مردی با همسر و دو تا دخترش در نزدیکی جنگلی زندگی میکرد. یکی از دخترها دختر مرد بود و دیگری دختر همسرش. دختر مرد خوب و زیبا اما دختر زن تندخو و زشت بود. با این حال مادرش این مسئله رو نمیپذیرفت و اون رو جذابترین و مهربونترین دوشیزه دنیا میدونست. روزی مرد دخترش رو صدا کرد و بهش گفت که باهاش به جنگل بره و هیزم بیاره اونها تمام روز رو به سختی کار کردند با وجود فعالیت زیاد خیلی سردشون شده بود چون باران سنگینی میبارید وقتی به خونه برگشتند سرتاپاشون خیز شده بود مرد با ناراحتی متوجه شد که تبرش رو جا گذاشته میدونست که اگه تمام شب اون تبر در گلولای بمونه زنگ میزنه و دیگه به درد نمیخوره. به همین خاطر به همسرش گفت من تبرم رو در جنگل جا گذاشتم. به دخترت بگو بره اون رو بیاره چون دختر من همه روز رو به سختی کار کرده و خیس و خسته است. اما همسرش در جواب گفت خیس بودن دخترت دلیل خوبیه که بره اون تبر رو بیاره. به علاوه اون دختر نیرومندیه کمی باران آسیبی بهش نمیرسونه در حالی که دختر من حتما سرما میخوره تجربه به مرد نشون داده بود که اصرار کردن فایده ای نداره در حالی که آهی می کشید به دختر بیچاره گفت که به جنگل بره و تبر رو بیاره رفتن دختر کمی طول کشید چون هوا بسیار تاریک بود و کفشاش مرتب توی گل فرو میرفت اما اون به همون ای که زیبا بود از شجاعت هم بهره داشت و هرگز به خاطر سختی و دشواری را فکر برگشت به سرش نزد. سرانجام در حالی که لباسش در اثر گرفتن به خارها پاره شده و صورتش در اثر برخورد با شاخه های درختان خراش برداشته بود به جایی رسید که صبح با پدرش هیزم بریده بودن. تبر اونجا پیدا کرد. در کمال حیرت دید که سه کبوتر کوچیک روی دسته اون نشستند و همگی گی غمگینند. دختر در حالی که اونها رو نوازش میکرد گفت تفلک های کچولو چرا اونجا نشستید و خیس شدید؟ به لونتون برین چون گرمتر از اینجاست. اما اول این نون رو که از شام خودم آوردم بخورید شاید خوشحال بشید. شما روی تبر پدر من نشستین. من باید هرچه چه سریعتر اونو به خونه برگردونم و گرنه با من دعوی سختی میکنه. بعد خورده های نون رو روی زمین ریخت و از دیدن پرنده ها که با خوشحالی به اون سمت میرفتن خوشحال شد. اون در حالی که تبر رو برداشته بود و به سمت خونه میرفت گفت خدا حافظ وقتی کبوترها همه خورده های نون رو خوردن، حالشون جا اومد و تونستن بلونشون که در بالای درختی بود پرواز کنن. یکی از اونا گفت اون دختر خوبیه. من واقعا قبل از اومدنش حتی نای باز کردن بالهام رو هم نداشتم. دلم میخواد کاری بکنم تا سپاسگزاریمو بهش نشون بدم. دیگریم فریاد زد خب بیای تاجگلی بهش بدیم که تا وقتی که روی سرشه پجمرده و خراب نشه. سومیم هم گفت و تازه کوچکترین پرنده های دنیا در میان گل های اون تاج باشن. اولی گفت بله این خیلی زیبا میشه. وقتی دختر وارد کلبش شد تاج گلی از گنچه های روز که پرنده کوچک نامرئی لابلایی اون در حال آوازخوندن بودن بر سر داشت. پدر که کنار آتیش نشسته بود فکر کرد که با وجود لباس های گلالود دخترش هرگز اون رو به این سیبایی ندیده اما نامادری و دختر دیگه خشمین شدند و بهش حسادت کردند. زن با خشونت گفت راه رفتن در تونین شب بارانی با اون لباس چقدر احمقانه است و به موقع گفتن این کلمات تاجگر رو از سر دخترک برداشت تا اون رو بر سر دختر خودش بگذاره به محض این که چون این کاری کرد روزها پژمرد مرد و قهویی شدن و پرندگان پروازکنان از پنجره خارج شدن. نامادری فریاد زد. ببین چه چیز بیخودیه حالا شامتو تو بخور برو بخواب. چون دیگه نزدیک نیمه شبه. اما با اون که نامادری وانمود می کرد از تاج گل بیزاره آرزوش این بود که دخترش یکی مثل اون رو داشته باشه. بر حسب تصادف شب بعد هم پدر که تنها به جنگل رفته بود برای دومین بار بدون تبرش به خونه برگشت. نامادری از این موضوع خوشحال شد و با نرمی گفت ای مرد بی دقیقت بازم تبرتو فراموش کردی؟ حالا دخترت تو خونه میمونه و دختر من میره و اونو میاره. اون شنلی روی شونه دخترش انداخت و بهش گفت فورا به جنگل بره. دخترک گرگر کنان با ناراحتی راهی شد چون اگرچه آرزوی داشتن تاج گر رو می کرد اما اصلا دلش نمیخواست برای دست یافتن بهش دوچار درد سر بشه وقتی دختر به جایی رسید که ناپدریش هیزم بریده بود واقعا خیلی عصبانی بود وقتی که چشمش به تبر افتاد دید که سه تا کبوتر کوچک غمگین با پرهای کثیف و گلالود که دسته اون نشستند، اون فریاد زد ای موجودات کثیف فوراً از اینجا دور بشین وگرنه به شما سنگ میزنم کبوتران وحشت زده بالهاشون رو باز کردند و در حالی که بدنشون از خشم میلرزید به بالای درخت پرواز کردند کوچکترین کبوتر پرسید چیکار کنیم تا انتقام خودمون رو ازش بگیریم تا به حالا هیچ کس با ما اینطور رفتار نکرده بود بزرگترین کبوتر گفت هرگز باید راهی پیدا کنیم تا این کارشو تلافی کنیم. کبوتر وسطی در جواب گفت من میدونم. اون دیگه نباید تا آخر عمر حرفی به جز موجودات کثیف بر زبون بیاره. دو کبوتر دیگه فریاد زدند: آفرین تو چقدر باهوشی چاره مناسبیه. اونها بالهاشون رو به هم زدند و چنان نوای شادمانی سر دادند و سر و صدایی کردند که همه پرندگانی که روی درخت بقلی بودن بیدار شدن. پرندگان با خوابولادیگی پرسیدن چه خبر شده؟ که گفتند گفتن این یه رازه. در همین موقع دختر به خونه نزدیکتر شده بود. اما مادرش به محض این کشید شنید اون کلون در رو بلند کرده برای شنیدن ماجرا بیرون دوید و فریاد زد. خب آیا تاجگور را گرفتی؟ دخترش جواب داد موجودات کثیف مادر دوباره پرسید. با من اینطور حرف نزن. منظور چیه؟ دختر که نمیتونست چیز دیگه بگه تکرار کرد. موجودات کثیف بعد زن متوجه شد که اتفاق بدی برای اون افتاده و خشمگین به طرف نادختری شفت و فریاد زد. میدونم تقصیر توه وقتی پدر از خونه بیرون رفت زن چوبی برداشت و اونقدر دختر رو کتک زد تا فریادش از درد بلند شد و هق هق کنان به بستر رفت اگر زندگی دختری بیچاره پیش از اون فلاکت بار بود حالا ده برابر بدتر شده بود چون به محض دور شدن پدرش از صبح تا شب اون رو عذیت میکردند و شکنجه میدادند و خشم اونها با دیدن تاج گل که کبوتران دوباره روی سر اون نهاده بودند، زیادتر میشد. اوزا چند هفته به همین شکل بود تا اینکه یک روز پسر پادشاه که در حال اسب سواری در جنگل بود، صدای پرندگان رو شنید که زیباترین آوازها رو میخوندند. اون اسبش رو به درختی بست و صدا رو دنبال کرد. با تعجب دختر زیبایی رو در مقابل خودش دید که هیزم می شکست و تا گلی از قنچه های روز صورتی بر برسر داشت که صدای آواز پرندگان از اون بلند می شود. اون پشت درختی پنهان شد و مدتی طولانی دختر رو تماشا کرد بعد در حالی که دستش روی کلاهش نهاده بود جلو رفت و باش صحبت کرد اون پرسید ای دختر زیبا کی هستی و چه کسی این تاج گل روزهای آوازخان رو به تو داده؟ چون پرندگان به قدری کوچیک بودن که تا از جلو به اونها نگاه نمی کردی نمیتونستی اونها رو ببینی. چهره دختر از شرم سرخ شد چون قبلا هرگز با یک شاهزاده حرف نزده بود. اون جواب داد من در کلبهی در حاشیه جنگل زندگی می کنم. در مورد این تاج گل نمی دونم چطور اونجا قرار گرفته. شاید هدیه ای از طرف کبوترانی باشه که وقتی گرسنه بودم بهشون غذا دادم. شاهزاده از شنیدن این جواب که نشونه مهربانی دختر بود خوشحال شد و در این حال به خاطر چهره زیبایی دختر بهش دل باخت و تا زمانی که دختر قول نمیداد که همراه اون به قصر بره و عروسش بشه دلش راضی نمی شد. پادشاه پیر از همسری که پسرش انتخاب کرده بود ناامید شده بود چون آرزو کرد که اون با شاهزاده خانم کشور همسایه ازدواج کنه اما شاهزاده از زمان تولد همیشه اون که دلش میخواست انجام داده بود و جشن عروسی با شکوهی برگزار شد یک روز بعد از عروسی عروس پیکی همراه با هدایای زیبا پیش پدرش فرستاد تا بهش بگه که خوشبختی به دخترش رو یاورده. همونطور که تصور می رفت نامادری و دخترش به قدری دچار حسادت شدند که مریض شدند. اگر هیچ وقت دوباره حالشون خوب نمیشد، دل کسی به حالشون نمی سخت. اما این اتفاق نیفتاد. بالاخره حالشون کمی بهتر شد چون مادر نقشه کشید تا بتونه از دختری که هرگز آزاری بهش نرسونده انتقام بگیره نقشه اون از این قرار بود در شهری که اون پیش از عروسی زندگی میکرد جادوگر پیری بود که از همه جادوگران دیگه ماهرتر بود زن میخواست پیش جادوگر بره و ازش خواهش کنه نقابی به شکل نادختریش براش بسازه وقتی که نقاب رو در اختیار داشت بقیه کارها آسون میشد. اون نقشش رو برای دخترش گفت و اگرچه دختر در پاسخ چیزی جز موجودات کثیف نمیتونست بگه سرش رو به نشانه موافقت تکون داد و لبخندی زد. همه چیز همونطور که زن انتظار داشت پیش رفت. جادوگر به کمک آینه جادوییش شاهزاده خانم جدید رو که در حال قدم زدن در باقهاش بود و لباس ابریشمی سبز به تنداش مشاهده کرد. و در طی چند دقیقه ماسکی ساخت که به قدری به چهره دختر شباهت داشت که هیچ کس نمیتونست در اون شک کنه به هر حال اون به توصیه کرد که وقتی دخترش اون رو برای اولین بار بر برصورت گذاشت آخر نقشه از این قرار بود چون این وانمود کنه که دندون درد داره و سرش رو با تور به زن از جادوگر تشکر کرد و پول خوبی هم بهش داد و در حالی که نقاب رو در زیر شنل خودش پنهان کرده بود به کلبه برگشت چند روز بعد شنید که قرار شکار بزرگی انجام بشه و شاهزاده قصر رو صبح زود ترک خواهد کرد به همین دلیل همسرش تمام روز تنها میشه این شانسی بود که نباید از دست میداد اون همراه دخترش به قصری که هرگز قبلا ندیده بود قدم گذاشت شاهزاده خانم در خونه جدیدش خوشبختتر از اون بود که نا های خونه قبلی رو به خاطر بیاره به همین دلیل با شادی به اون دوتا خوش خوشامد گفت و چیزهای زیبایی رو بهشون داد تا با خودشون ببرن. بالاخره اونها رو به کنار ساحل برد تا قایق تفریحی رو که شوهرش براش ساخته بود به اونها نشون بده. زن از این فرصت استفاده کرد و به آرامی به پشت سر دختر رفت و اون را از صخره ای که بر روی اون ایستاده بود بین آبهای عمیق انداخت. دختر فوراً به زیر آب رفت بعد زن نقاب رو روی صورت دخترش گذاشت و شنل مخملی شاهزاده خانم رو که روی زمین افتاده بود روی شونهاش انداخت و بعد یک بوشش توری روی سر دخترش انداخت مادر گفت وقتی که شاهزاده برگشت دستت رو روی گونت بگذار انگار که درد داری هر کاری که میکنی مواظب باش حرف نزنی. من پیش جادوگر میرم تا ببینم آیا میتونه تلسمون پرندگان مخوف رو باطل کنه؟ اه چرا قبلا به این فکر نگفتادم؟ شاهزاده به محض بازگشت به قصر به اتاق شهزاده خانم رفت و اون رو که ظاهرا درد میکشید دراز کشیده روی کاناپه پیدا کرد. شاهزاده در کنار دختر زانو زد و در حالی که سعی میکرد دستش رو بگیره فریاد زد. همسر عزیزم، چه بلایی سرت اومده؟ اما دختر دستش رو دور نگه داشت و در حالی که به گونش اشاره میکرد چیزی زمزمه کرد که شاهزاده نفهمید. شاهزاده پشت سرهم از دختر سوار کرد چی شده؟ به من بگو. درد زیادی داری؟ چه وقت شروع شده؟ میخوای دنبال ندیمه هات بفرستم تا اون محل رو شستشو بدن؟ اما دختر فقط سرش رو داد. شاهزاده ادامه داد. اما من نمیتونم طور اینطوری رها کنم باید تمام پزشکان دربار رو احضار کنم تا داروی آرامبخش روی محل درد بذارم شاهزاده با زدن این حرف از جا بلند شد تا به سراغ اونها بره این کار به قدری همسر قلابی رو که میدونست اگه پزشکان اون رو معاینه کنن حقش بلا فاصله کشف میشه ترسوند که توصیه مادرشو که ازش خواسته بود حرف نزن از یاد برد و حتی تلسمی که خودش دوچاره شده بود فراموش کرد و در حالی که جامعه شاهزاده رو در دست گرفته بود آجزان فریاد زد موجودات کثیف مرد جوان متوقف شد نمیتونست حرفی رو که شنیده بود باور کنه اما تصور کرد که درد موجب تند خوی شاهزاده خانم شده و هر حال شاهزاده حدث میزد که دختر دلش میخواد تنها باشه و همین خاطر فقط گفت خب کمی بخواب شاید حالت جا اومد البته اگه بتونی بخوابی فردا که از خواب بیدار بشی حالت بهتر شده اتفاقا اون شب هوا خیلی داغ و خفه بود و شاهزاده پس از تلاش ای که برای خوابیدن کرد سرانجام از جا بلند شد و به سمت پنجره رفت ناگهان زیر نور ما هیکل فردی رو دید که تاجه گلی از رز برسر داره و از دریای زیر پای شاهزاده بیرون اومد، و پا به روی ماسه ها نهاد و دستهاش رو به سمت قصر دراز کرد. اون به خودش بکرد اون دختر شباهت عجیبی به همسر من داره. باید برم اون از نزدیک تر ببینم. شاهزاده شتابان به طرف آب رفت. اما وقتی که به اونجا رسید شاهزاده خانم یعنی شاهزاده خانم واقعی کاملا ناپدید شده بود و شاهزاده تصور کرد که چشمهاش اون فریب دادند. صبح روز بعد شاهزاده به اتاق عروس قلابی رفت اما ندیمه هاش بهش گفتند که شاهزاده خانم نه حرف میزنه و نه از جاش بلند میشه. اگرچه همه چیزهایی رو که براش بردند خورده. شاهزاده مات و مبود مونده بود که چه بلایی بر سر زنش اومده. چون حدس نمیزد که دختر منتظر مادرشه که هر لحظه سر برسه و تلسم رو که کبوتران بهش بستن کنه. تلک میترسید حرف بزنه و مشت خودش رو باز کنه. برخره شاهزاده تصمیم گرفت همه پزشکان دربار رو احضار کنه. اون به شاهزاده خانم نگفت که چه کاری میخواد بکنه؟ چون میترسید حال اون رو خرابتر کنه. اما خودش پیش چهار تن از پزشکان خاص پادشا رفت و از اونها خواهش کرد همراه اون به اتاق شاهزاده خانم برن. متاسفانه به محض ورود اونها شاهزاده خانم به قدری از مشاهده پزشکان شد که، کبوتران رو کاملا از یاد برد و فریاد زد موجودات کثیف موجودات کثیف این اهانت آنقدر پزشکان را ناراحت کرد که بلافاصله اتاق رو ترک کردند و شاهزاده نتونست اونها رو راضی بموندن کنه اون سعی کرد همسرش رو تشویق کنه که پیغامی برای پزشکان بفرسته و از گستاخی خودش اظهار تعصف کنه اما شاهزاده خانم چیزی نگفت اون شب دیر وقت وقتی که شاهزاده تمام وظایف خسته رو که هر شاهزادهای باید انجام بده تمام کرده بود از پنجره خم شد تا نسیم خنکی که از دریا میوزید خستگی رو از تنش دور کنه افکارش متوجه اتفاق صبح بود و نمیدونست که آیا روی هم رفته ازدواجش با همسری از طبقه پایین جامعه با وجود زیبایی کار درستی بوده یا نه چطور میتونه ستصور کنه که دختر ساکت و آرامی که همراه خوبی در روزهای اول بعد از ازدواجشون براش بود یک روز تبدیل به زنی گستاخ و تندخو شده که نمیتونه حتی برای نفع خودش خشمش رو مهار کنه؟ یک چیز روشن بود. اگر هر چه زودتر رفتارش رو تغییر نمیداد شاهزاده اون را از دربار بیرون میکرد. این افکار در سرش بود که چشماش به دریای زیر پاش افتاد. اونجا مثل قبل همون شخصی رو که به همسر شباهت داشت در بین آب دید و دستهاش رو به طرف اون دراز کرده بود شاهزاده فریاد زد صبر کن تا بیام صبر کن تا بیام بدون اون که حتی بدونه که داره حرف میزنه اما وقتی که به ساحر رسید چیزی به جز سایه هایی که در محتاب روی زمین افتاده بود وجود نداشت مراسم حکومتی که قرار بود در شهری برگزار بشه موجب شد شاهزاده به محض طلوع خورشید راهی اون محل بشه بدون اینکه همسرش رو دوباره ببینه شاهزاده به خودش گفت شاید تا فردا عقلش سر جاش بیاد اگه قرار باشه اون رو پیش پدرش بفرستم شاید بهتر باشه فعلا هم دیگه رو نبینیم. بعد موضوع را از خاطر برد و افکارش رو روی وظیفه‌ای که باید انجام میداد متمرکز کرد وقتی که به کاخ برگشت تقریبا نیمه شب بود اما به جای ورود به قصر به ساحر رفت و پشت سنگی مخفی شد چیزی نگذشت که دختر از دریا بیرون اومد و دستهاش رو به سمت پنجره اتاق شاهزاده دراز کرد شاهزاده در یک لحظه دستش رو گرفت با اینکه دختر از طرز شروع به تقلا کرد تا به آب برسه چون اون رو هم تلسم کرده بودن. اما شاهزاده اون رو محکم نگه داشت شاهزاده گفت تو هم سر واقعی من هستی نمیگذارم بری اما هنوز کلمات کاملا از دهانش بیرون نیومده بود که فهمید چیزی رو که در دست گرفته پنجه یک خرگوش صحرایه بعد خرگوش صحرایی تبدیل به ماهی و ماهی تبدیل به پرنده و پرنده تبدیل به یک مار نفرت انگیز شد این بار دست شاهزاده تقریبا باز شد اما با تلاش زیاد انگشتانش رو محکم کرد و در حالی که شمشیرش رو در بود سر مار رو قطع کرد در این موقع تلسم باتل شد و دختر مثل اولین باری که شاهزاده اون رو دیده بود با تاج گلی که بر سر داشت و پرندگان در بین اون نقمی شادی سرداده داده بودند پیدا شد صبح روز بعد نامادری با داروی که جادوگر پیر بهش داده بود تا روی زبان دخترش بگذاره به قصر رسید اگر عروس واقعی در دریا غرق شده بود تلسم کبوتران میشکست و گرنه بیفایده بود مادر به جادوگر اطمینان داده بود که نادختریش رو در حال غرق شدن دیده و ترسش در مورد بازگشت اون بیهود است. اما برای محکم کاری از جادوگر خواسته بود که دختر رو تلس می کنه و اون این کار رو کرده بود. بعد از اون نامادری بجنس تمام شب رو در راه بود تا هر چه زودتر به قصر برسه و مستقیما وارد اتاق دخترش شد. زن پیروزمندان فریاد زد. اونو آوردم، اونو آوردم و دارو رو روی زبان دخترش گذاشت. زن با غرور پرسید حالا چه میگی؟ دختر جواب داد موجودات کثیف، موجودات کسیف. مادر دستاشو پیچوند و گریه کرد چون فهمید که همه هاش نقشه براب شده. در همین موقع شاهزاده با همسر واقعیش وارد شد و گفت هر دوی شما سزاوار مرگ هستید و اگر به میل من بود، چنان مجازاتی می میشدید که عبرتی بشید برای خلق اما شاهزاده خانم از من خواهش کرد که زندگیتون رو به شما ببخشم و همین خاطر شما را سوار کشتی میکنم و به جزیره بی آب و علفی میبرند که تا آخر عمر باید اونجا بمونید بعد کشتی آماده شد و زن جنس و دخترش رو سوار اون کردند کشتی از اونجا دور شد و دیگه کسی چیزی از اونها نشنید اما شاهزاده و همسرش عمری طولانی داشتند و به شادی با همدیگه زندگی و به خوبی بر مردم حکومت کردند. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها. طبیعت های زیبا و ناب،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 ادساین مهران دوستی